کانال تلگرامی هزار افسان، داستان های صوتی به مدیریت محمد جواد بوستانی گوینده عظیمه علی گلزاده این داستان اجاق آهنی در سالهای خیلی خیلی دور وقتی که همه رویه های افراد حقیقت داشت جادوگر پیری بود که پسر پادشاه را تلسم کرد اونو در یه اجاق آهنی داخل جنگر زندانیش کرد این جوان سالهای سال اونجا زندگی کرد و هیچ کس نتونست نجاتش بده تا اینکه روزی دختر یک پادشاه به جنگل اومد. راه گم کرد و نتونست راه سرزمین پدرشو پیدا کنه. این دختر نه روز همه جا رو گشت. اونقدر گشت تا اینکه که بلاخره به یه خونه آهنی رسید. صدایی از داخل خونه به گوشش رسید که پرسید از کجا اومدی و به کجا داری میری دختر؟ دختر جواب داد من راه سرزمین پدری خودم رو گم کردم و نمیتونم به خونه برگردم. صدای داخل اجاق آهنی گفت من میتونم بهت کمک کنم که راه خونه رو پیدا کنی. خیلی زود هم میشه این کار رو برات انجام بدم اما به شرطی که قول بدی کاری را که ازت بخوام برام انجام بدی. من یه شاهزاده بزرگ هستم و دوست دارم بعدم باید ازدواج کنم. دختر ترسید و فکر یه دختر جوون برای یه اجاق آهنی چه کاری رو میتونه انجام بده؟ اما چون خیلی دوست داشت هرچی زودتر پیش پدرش برگرده قول داد که دستورش رو اجرا کنه مرد جوون گفت تو باید دوباره برگردی یه چابو با خودت بیاری و این آهن رو سوراخ کنی بعد یه نفر رو برای راهنمایی همراه دختر فرستاد بدون اینکه حرفی بزنه خیلی زود دختر رو به خونش رسون. از اینکه شاهزاده خانم به قصر برگشت همه افراد قصر خوشحال شدن. پادشاه پیر هم دستشو دور گردن دخترش انداخت و از خوشحالی اونو بوسید اما دختر که تو دردسر افتاده بود گفت پدرجان گوش کن تا یه موضوعی را برات تعریف کنم. من از پیدا کردن خونه کاملا ناامید شده بودم. اما به یه اجاق آهنی رسیدم که داخل خونه ای زندانی بود. من بهش قول دادم برای آزاد کردنش برگردم و به او ازدواج کنم. پادشاه پیر خیلی ترسید و نزدیک بود قش کنه. چون این دختر تنها دخترش بود. پس یه جلسه ای رو تشکیل دادند و تصمیم گرفتند که دختر آسیابون رو که بسیار زیبا و قشنگ بود به جای دختر پادشاه به اون خونه بفرستند. اونها دختر رو به اونجا بردند و چاقوی به دستش دادند و گفتن باید اجاق آهنی رو بباره. دختر 24 ساعت مشغول بریدن شد اما هیچ اتفاقی نیفتاد. وقتی صبح شد صدایی از داخل اجاق گفت احساس می کنم بیرون؟ صبح شده. دختر جواب داد. به نظر منم همینطوره. احساس می کنم صدای گردش آسیاب پدرم رو می جوون گفت. پس تو دختر یه آسیابون هستی؟ فورا از اینجا برو و بگو دختر پادشاه بیاد. دختر رفت و به پادشاه پیر گفت. اجاق آهنی اونا قبول نکرده و شازاد خانم رو می پادشاه پیر ترسید و دخترش هم گریه کرد. اما دختر چوپون خیلی زیباتر از دختر آسیابون بود. اونا به دختر چوپون یه تکه طلا دادند و تا اینکه به جای شاهزاده خانو سراغ اجاق آهنی بره. بعد دختر رو به اونجا بردن و او مجبور شد 24 ساعت به بریدن ادامه بده. اما هیچ پایده ای نداشت با رسیدن صبح صدایی از داخل اجاق گفت به نظر میاد صبح شده دختر جواب داد بله درسته منم احساس میکنم صدای نه پدرمو میشنوم. پس صدا اومد که تو دختر یه چوپون هستی فورا از اینجا برو بگو دختر پادشا بیاد به او بگو من پیشگوی خوبی هستم و پیشبینی می کنم که اگر او نیاد تمام سرزمینش از بین میره و حتی یه دیوار سالم هم باقی نمیمونه. مونه. شازاد خانم با شنیدن این حرف ها گریه کرد. اما این درست نبود. او میواست به قولش عمل می کرد. اون با پدرش خداحافظی کرد و چاقوی به کمهش بست و به جنگل رفت. وقتی به خانه و اجاق رسید شروع کرد به بریدن اجاق. پس از دو ساعت سوراخ کوچیکی در آن ایجاد شد و دختد از داخل سوراخ نگاه کرد و جوان زیبایی رو دید که سر تا پاش پر از طلا و جواهر بود همون لحظه بهش علاقه من شد اما سختتر از قبل به کارش ادامه داد و سوراخ بزرگی روی اجاق درست کرد طوری که مرد میتونست از اون خارج بشه مرد جوان گفت تو مال منی و من مال تو هستم تو همسر منی چون منو آزاد کردی او میخواست دختر رو به سرزمین خودش ببره اما شاهزاده خانم خواهش کرد که اجازه بده یه بار دیگه به خونه بره و پدرش رو ببینه شاهزاده هم مخالفتی نکرد اما سفارش کرد بیشتر از سه کلمه با پدرش حرف نزنه و دوباره برگرده دختر به خونه رفت، اما افسوس، او بیشتر از سه کلمه حرف زد و در یک لحظه اجاق آهنی ناپدید شد و بیمیون کوهی از شیشه و شمشیرهای تیز رفت، اما شاهزاده آزاد نبود و مدت زیادی داخل اون نموند. دختر با پدرش خداحافظی کرد. مقداری پول گرفت و به طرف جنگل رفت تا اجاق آهنی رو پیدا کنه اما هیچ ای از اون نبود او نه روز همه جا را گشت بعد گرسنگی اونقدر بهش فشار آورد که نمیتونست چطور باید به زندگیش ادامه بده نزدیک غروب اون بالای درختی رفت و اصلا دلش نمیخواست شب بشه چون از حیوانات وحشی خیلی میترسید نیمه های شب بود که از فاصله دور نوری را دید و فکر کرد بهتره که خودم به اونجا برسونم. بعد از درخت پایین اومد و به طرف نور رفت. او به خانه کوچیکی که رسید که سبزه های انبوی اطراف اون پوشینده بودن. کنارشم مقداری هیزم ریخته بود. دختر فکر کرد آه یعنی اینجا کجاست؟ او از پشت پنجره نگاه کرد. اما فقط چند وزق کوچک و بزرگ و یه میز رو دید که با صلیقه و دقت چیده شده بود و روی اون پر از گوشت های کباب شده و نوشیدنی بود. همه یه ظرف از نقره بودن. اون نفسش تو سینه حبس کرد و در زد بعد صدای یک وزق چاق به گوش رسید که میگفت وزق کوچولوی سبز پا اصایی درواز کن و خوب نگاه کن ببین کیه در میزنه بابی قراری یک وزق کوچک در رو باز کرد و دختر داخل اومد همه به او خوش آمد گفتن و تعارف کردن که بشینه اونا پرسیدن که چطور به اینجا اومد و چی میخواد دختر همه اتفاقات رو از اول مو به مو تعریف کرد و گفت که چون بیش از سه کلمه حرف زده اجاق شاهزاده ناپدید شدن و مدتیه که دنبال اونها میگرده و بین کوه ها در سرگردون شده تا شاهزاده رو پیدا کنه. وزق پیر گفت وزق سبز کوچولو با پاهای پیچ پیچی زود برو به اون گوشهی که میدونی برام بیار اون صندوق بزرگ و قدیمی. و کوچولو رفت و یه صندوق بزرگ آورد. بعد اونها به دختر آب و غذا دادند و اونو به یه اتاق زیبا راهنمایی کردند. کمی بعد دختر روی تخت ابریشمی داخل اتاق خواب سنگینی رفت. وقتی که خورشید ازصد آسمون اومد اون بیدار شد و ازذغ پیر از داخل صندوق سه تا وسیله بهش داد. این چیزا خیلی به دردش میخوردن. چون او باید از یک کوه شیشه‌ای بالا میرفت از سه شمشیر برنده عبور می‌کرد و دریاچه بزرگی را هم پشت سرش می تا شاهزاده رو پیدا کنه. به همین دلیل به او سه سوزن دراز یک چرخ شخم زنی و سه گردو دادن که او باید با دقت از اونها مراقبت می‌کرد. دختر به راه افتاد. وقتی به کوه شیشه‌ای رسید که خیلی لیز بود سوزنا رو به پاهاش بست و بعد از گذشتن از کوه اونها رو باز کرد. بعد به سه شمشیر بارنده رسید و اون سوار چرخش شد و از روی اونها هم گذشت. بلاخره دختر به دریاچه بزرگی رسید و بعد از رد شدن از اون چشمش به قصر زیبایی افتاد. اون خودشو به شکل خدمتکار در آورد و به عنوان آشپس قصر در اونجا مشغول کار شد. او میدونه که شاهزاده که به کمک او از اجاق آهنی بیرون اومده درون قصره. پس قبول کرد با دستمز کم در قصر کار کنه. شاهزاده با یه شاهزاده خانوم ازدواج کرده بود چون فکر میکرد که او مدتها قبل مرده. هنگام غروب وقتی دختر آماده استراحت بود دستشو به جیب لباسش برد و گردوهایی رو که وزق پیر بهش داد صدا کرد. اونو گرفت و یکی از اونها رو شکست تا مقصشو بخوره. اما چیزی که دید آور کردنی نبود. داخل گردو یه پیراهن زیبای سلطنتی قرار داشت. وقتی عروس قصر این خبر را شنید، سراغ دختر اومد و خواهش کرد لباس رو به او بفروشه. چون عقیده داشت که همچین لباسی به درد یه دختر خدمتکار کار نمیخوره دختر گفت حاضره، بفروش لباس نیست، مگر اینکه؟ اجازه بدن یه شب تو اتاق شاهزاده بخوابه عروس قبول کرد چون لباس واقعا نظیر بود و نمیتونست از اون چشم پوشی کنه همون شب عروس به شوهرش گفت اون خدمتکار احمد میخواد تو اتاق ما بخوابه مرد جواب داد اگه تو راضی هستی من حرفی ندارم اما زن به شوهرش یه لیوان نوشیدنی داد که داخلش قرص خواب انداخته بود بعد شاهزاده و دختر وارد اتاق شدن. اما مرد خیلی زود به خواب عمیقی رفت و دختر هر چه سعی کرد نتونست اونو بیدار کنه. او تمام و گریه کرد و گفت من تو را در اون جنگل تاریک از اجاق آهنی نجات دادم و مدت هاست که دنبال تو میگردم. از کوه شیشهای بالا اومدم و سه شمشیر بارنده رو پشت سر گذاشتم. از دریاچه بزرگم رد شدم تا تونستم تو را پیدا کنم حالا تو نمیخوای به حرفام گوش بدی؟ خدمت کارا بیرون اتاق تا صبح صدای گریه اونو شنیدن و روز بعد ماجرا را برای اربابشون تعریف کردم اصر روز بعد دختر بعد از تمام کردن کارها گردوی دوم رو هم شکست و متوجه شد داخل اون هم یه پیراهن زیباست عروض باز هم به دختر پیشنهاد میده که این لباس را ازش بخره دختر پول نمیخواست تقاضای او این بود که دوباره در اتاق شاهزاده بخوابه عروس بازم به شوهرش غرص خواب داد و او تا صبح چیزی نشنی دختر بیچاره تمام شب رو گریه کرد و گفت من بودم که تو را تو اون جنگل تاریک از اجاق آهنی نجات دادم مدت هاست دنبال تو میگردم و از کوه شیشهای بالا اومدم ست شمشیر برنده را هم پشت سر گذاشتم از دریاچه بزرگم رد شدم تا تونستم تو رو پیدا کنم حالا تو نمیخوای به حرفان گوش بدی خدمتکارانی که بیرون اتاق بودند تا صبح صدای گریه اونو شنیدند و روز بعد ماجرا را برای اربابشون تعریف کردند. شب سوم وقتی کارهای دختر تمام شد گردوی سوم رو شکست. داخل آن. یک پیراهن بسیار زیبا بود که از طلای خالص ساخته شده بود. وقتی خبر به گوش عروس رسید، خواست اونو بخره، اما بازم تنها شرط دختر برای دادن لباس این بود که اجازه بده برای سومین بار در اتاق شاهزاده بخوابه. اما این بار شاهزاده حواسشو جمع کرد تا قرص خواب به خوردش ندهن. بازم دختر شروع کرد به گریه و گفت: "همسر عزیزم، من بودم که تو اون جنگل تاریک تو رو از اجاق آهنی نجات دادم مرد از جاش پرید و گفت درسته تو مال منی یا؟ من مال تو هستم با اینکه هنوز صبح نشده بود اونها سوار کالسکه شدند و لباسهای عروس قلابی را هم با خود بردند تا اون نتونه دنبالشون بیار وقتی به دریاچه بزرگ رسیدم سوار قایق شدند و برای رد شده سه شمشیر تیز رویه چرخ شوخ میزنی نشستند و برای گذاشتن از کوه سوزن ها رو به پاهاشون بستند سرانجام اونها به کلبه قدیمی و کوچیک رسیدن اما همین که پایشون رو داخل کلبه گذاشتن خونه تبدیل به یک قصر باشکو شد همه وسخ‌ها آزاد و به شاهزادههایی زیبا تبدیل شدند و با خوشحالی بیرون دویدند جشن ازدواج بزرگی برگزار شد و اونها زندگی خودشونو تو قصر شروع کردند. این قصر خیلی بزرگتر از قصر پدر شاهزاده خانم بود و برای اینکه پیرمرد تنها نمونه اون رو هم به اونجا آوردند حالا اونها صاحب دو سرزمین بودند و با خوبی و خوشحالی به زندگی خودشون ادامه دادند